این داستان شیردال پیر روزی روزگاری زیر آسمون آبی پادشاهی زندگی میکرد که نه اسمشو میدونم و نه نمیدونم حاکم کدوم سرزمین بود. فقط میدونم فرزند پسر نداشت و تنها دخترش همیشه خدا مریض بود. پزشگاه نمیتونستن شاه سادخانمو مداوا کنند. ولی اینو هم به پادشاه گفته بودند که دخترش با خوردن سیب شفا بخش نجات پیدا میکنه. پادشاه دستور داد در سراسر قلمروش جار بزنن و همه جا بگن که هر کسی بتونه سیبی شفا بخش بیاره که اون دختر با خوردنش نجات پیدا کنه میتونه با شاهزاده خانم ازدواج کنه و بعد هم به سلطنت برسه. این خبر به گوش دهقانی رسید که سه تا پسر داشت. اون به پسر بزرگش گفت: برو توی باغ، یه سبد از اون سیبای سرخ قشنگ بچین و به دربار ببر. شاید دختر پادشاه با خوردن اون سیبا معالجه بشه و تو بتونی همسر اون بشی و به تخت سلطنت دست پیدا کنی. جوان به حرف پدرش گوش کرد و با یه سبد سیب به راه افتاد. هنوز راه زیادی نرفته بود که به کوتوله برخورد. کوتوله ازش پرسید: تو سبدت چی داری؟ هل که اسم پسر بزرگ دهقان بود در جواب گفت: پای قورباغه. کوتوله گفت: پاهای قورباغه در سبد خواهند ماند. هل به راهش ادامه داد تا به قصر رسید و گفت که سیبایی آورده که شاهزاده خانم با خوردنش از بیماریش نجات پیدا میکنه. پادشاه از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد و اجازه داد وارد دربار بشه. خدا روز بد برای کسی نیاره. وقتی در سبد و باز کردن دید که به جای سیب پر از پای قرباغ است. پادشاه خیلی عصبانی شد و اونو از قصر بیرون کردن. وقتی پسر به خونه برگشت تمام داستان رو برای پدرش تعریف کرد. بعد پدر فرزند دومش رو که سایم نام داشت با یه سبت سیب به دربار فرستاد. بار دیگه کتوله پیدا شد. ازش پرسید که تو سبت چی داری؟ سایم در جواب گفت بذر خار. کتوله گفت بذر خار در سبدت خواهد ماند. وقتی صائم به قصر پادشاه رسید و خبر داد که سیب شفا بخش ورده، پادشاه اجازه ورود نداد و گفت که قبلا یه نفر اومده و سر به سرشون گذاشته. ولی سایم اصرار کرد و گفت که اون سیب واقعی آورده و کافیه که بهش اجازه بدن وارد قصر بشه. سایم اونقدر اصرار کرد که بالاخره اونو نزد پادشاه بردن. ولی به محض اینکه جوون در سبد رو باز کرد دید داخل سبد چیزی جز بذر خار نیست. پادشاه خیلی آزرده شد و دستور داد صائم رو با شلاق از قصر بیرون کنن. اون به خونش برگشت و همه داستان رو برای پدرش تعریف کرد. این بار نوبت پسر سوم بود که همه اونو جک احمق صدا می‌کردن. جک رفت و از پدرش پرسید که آیا میتونه با یه ثبت سیب به دربار بره؟ پدرش گفت تو بری که چی کار کنی؟ وقتی زرنگ تر از تو رفتن و دست خالی برگشتن از دست تو چه کاری برمیاد؟ پسر سوم که حرفای پدرش رو قبول نداشت اصرار کرد و گفت با این همه من باید برم پدر گفت دور شد جوان کم شعور. تو هنوز خیلی مونده که دست به اینجور کارا بزنی. بعد سرش رو برگردوند. پسر جوان لباس روستایی پدرش رو کشید و گفت پدر من به هر حال میرم. پدر با لحنی تحقیرآمیز گفت حالا که دلت میخواد بری برو ولی اینو بدون که تو هم دست خالی برمیگردی. پسر جوون با شنیدن رضایت پدر خیلی خوشحال شد. پدر با دیدن حرکات پسر بهش گفت رفتارت مثل دیوونه هاست، روز به روز احمق تر میشی. این حرفها در جک تأثیری نداشت و ذره ای از شادی و امیدش کم نکرد. وقتی شب فرا رسید از شدت حیجان نمیتونست بخوابه، فقط یه مدت کوتاه خوابید. در اون فاصله کوتاه هم خواب دختر زیبایی رو دید که در قصر سلطنتی زندگی میکرد و سر تا پاش جواهر بود. جک صبح زود راه افتاد. هنوز راه زیادی نرفته بود که کتوله رو دید. کتوله ازش پرسید در سبد چی داری؟ او هم در جواب گفت سیب. سیبایی که قرار دختر پادشاه اونا رو بخوره و معالجه بشه. کتوله گفت سیبها در سبدت خواهد ماند. وقتی جک به قصر رسید بهش اجازه ورود ندادند. اونا گفتند که تا اون موقع دو نفر اومدن و ادا کردن سیب آوردن در حالی که سبد یکی پای قورباغه بود و سبد دیگری بزر خار. جک بیش از اندازه اصرار کرد و گفت که در سبدش نه پای قورباغه است و نه بزر خار. بلکه زیباترین ترین سیبایی که در قلم رو به سلطنتی پادشاه به عمل میاد. نگهبانا از لحن صادقانه جک پی بردند که او دروقو نیست و سرانجام بهش اجازه دادند وارد قصر بشه. حق با نگهبانا بود که بهش اعتماد کرده بودن. به محض اینکه در سبت باز شد سیبهایی به درخشش طلا از سبت بیرون ریخت. پادشاه با خوشحالی تعدادی از اونارو رو برداشت و نزده دخترش برد و تا وقتی که سیبها رو میخورد بی سبرانه منتظر موند تا ببینه نتیجه چی میشه. طولی نکشید که خبر خوش رسید. فکر میکنید چه کسی خبر آورد؟ خودش خود شاهزاد خانم؟ بله، خود شاهزاده خانم چون بعد از خوردن سیب، در حالی که سلامتیش بهش برگشته بود، از تخت خواب بیرون پرید و شادمانی پادشاه قابل وصف نبود. ولی پادشاه زیر قلش زد و گفت جوان، اول باید قایقی بسازی که در خشکی حتی بهتر از آب حرکت کنه. جک پذیرفت. به خانه برگشت و ماجرا رو برای اعضای خونبادش تعریف کرد. پدر هل رو به جنگل فرستاد تا قایق مورد نظر رو بسازه اون رفت و شروع کرد به ساختن قایق کار میکرد و سوت میزد عواست روز که خورشید به وسط آسمون رسیده بود کتوله اومد و پرسید چی میسازی؟ هل جواب داد یه کاسه چوبی مرد کتوله گفت کاسه چوبی خواهد ماند شب که شد هل قایق را تمام کرده بود خواست بره توش بشینه که قایق تبدیل به یک کاسه چوبی شد روز بعد سائم به جنگل رفت اما اون هم دوچار همون سرنوشت شد در سومین روز جک رو فرستادن. او سخت سرگرم کار شد تنین ضربه های محکمش در تمام جنگل میپیچید ضمن کار با شادی سوت میزد و آواز می‌خوند. وسط روز توی اون هوای گرم، کتوله اومد و پرسید: چی میسازی؟ جک جواب داد: قصد دارم قایقی بسازم که توی خشکی بهتر از آب حرکت کنه. با انجام این کار میتونم با دختر پادشاه ازدواج کنم. کتوله گفت: قایق خواهد ماند. شامگاه که گوی طلایی خورشید ناپدید میشد، قایق و ملحقاتش آماده شده بود. جک هم پاروزنان، اون رو به سرعت باد حرکت میداد و به سوی قصر میرفت. پادشاه از دور قایق رو دید که به سوی قصر میاد، ولی حاضر نشد دخترش رو به عقد اون پسر در بیاره. این بار شاه گفت که اون باید از بام تا شام در چراگاه از ست تا خرگوش نگهداری کنه و اگر حتی یکی از خرگوش فرار کنه اجازه نمیده دخترش همسرش بشه. جک شرط رو پذیرفت. روز بعد با گله خرگوش به چراگاه رفت و با دقت مواظب اونا بود که فرار نکنن. هنوز چند ساعت از روز نگذشته بود که خدمتکاری از قصر اومد و گفت چون تعدادی مهمون وارد قصر شده، یکی از خرگوش رو بهش بده. جک کمی فکر کرد و بعد گفت خرگوشی بهت نمیدم. خدمتکار بهش پرخاش کرد. جک گفت اگر خود شاهزاده خانم بیاد، حاضر یکی از خرگوش رو در اختیارش بذاره. خدمتکار برگشت و پیغام رو به قصر برد. شاهزاد خانم تصمیم گرفت نزد جوان بره. همون موقع سر و سراکله کتوله پیدا شد و از جک پرسید چه میکنه؟ جک جواب داد که باید از 100 تا خرگوش نگهداری کنه و مواظب باشه فرار نکنن. پس از اون می با دختر پادشاه ازدواج کنه و بعدها به مقام پادشاهی برسه. کتوله گفت خب این سوت سوتک رو بگیر. اگر یکی از خرگوش فرار کرد کافیه یه سوت بزنی تا خرگوش برگرده. وقتی دختر پادشاه اومد، جک یکی از خرگوش رو روی پیشبندش گذاشت. ولی وقتی حدود صد قدم از اونجا دور شدن، جک سود زد و خرگوش از روی پیشبند شاسد خانوم پرید و به بقیه خرگوش ملحق شد. وقتی هوا تاریک شد، جک دوباره سود زد تا مطمئن بشه که همه گله دور هم هستن. بعد خرگوش رو به طرف قصر برد، پادشاه سخت تعجب کرد که جوان چطور تونسته از اون همه خرگوش نگهداری کنه. ولی باز هم حاضر نشد دخترش رو به ازدواجش در بیاره. شرط تازهی گذاشت. شرط جدید این بود که جک پری رو از دوم شیر دال پیر برای پادشاه بیاره. بچه ها شیر دال، حیولایی در افسانه‌های یونانی و رومی، که بدن شیر و سر و بال و پنجه عقاب داره. جک فرز و چالاک راه افتاد. شب که شد به یک قصر رسید. چون در روزگارای قدیم مسافرخونه ای وجود نداشت بنابراین جک از صاحب قصر تقاضا کرد که شب رو اونجا بگذرونه. صاحب قصر با خوشرویی اونو پذیرفت و ازش پرسید قصر داره کجا بره. جک جواب داد نزد شیردال پیر. صاحب قصب گفت نزد شیردال پیر؟ میگن او از همه چیز خبر داره. من کلید صندوقچه پولم رو گم کردم. ممکنه لطف کنی و جای اونو ازش بپرسی؟ جک جواب داد حتما میپرسم. روز بعد صبح زود به راه افتاد و تمام روز رو راه رفت تا اینکه به قصر دیگه رسید و شب رو در همون قصر موند. وقتی ساکنای قصر متوجه شدند که او برای دیدن شیردال پیر سفر میکنه گفتند یکی از دختران اونا مریضه و برای درمان اون هر کاری تونستند کردند ولی موفق نشدند. بعد از جک خواستن لطفی در حق اونا بکنه و از شیردال پیر چاره رو بپرسه. جک قول داد با کمال میل اون کار را انجام میده و دوباره به راهش ادامه داد. کمی بعد جک به دریاچهی رسید که به جای قایق مردی بلندقدر افراد را از یک طرف به طرف دیگه میبرد. مرد بلنقد از جک پرسید به کجا میری؟ جک جواب داد، نزد شیردال پیر مرد گفت وقتی رسیدی از جانب من بپرس چرا محکوم هستم که مردم را حمل کنم جک گفت مرد خوب و بزرگوار حتما خواهم پرسید بعد مرد بلندقامت جک را رو روی دوشش گذاشت و از دریاچه عبور کرد سرانجام جک به خانه شیردال پیر رسید شیردال نبود ولی همسرش در خانه بود زن از جک پرسید برای چه کاری اومدی؟ جک جواب داد که باید پری از دوم شیردال پیر به دست بیاره علاوه اون در قصری کلید صندوقچه پولی گم شده باید جای کلید رو از شیردال پیر بپرسه در قصر دیگری دختری به بیماری لاعلاجی دچار شده و ازش میخوام که بگه راه درمانش چیست؟ و بالاخره در همون نزدیکی مردی آدم ها رو به دوش میکشه و از روی دریاچه رد میکنه. میخواد بدونه چرا اون مجبوره این کار رو انجام بده. زن گفت اگه یه آدم بخواد با شیردال صحبت کنه شیردال اونو درسته قورت میده. ولی اگر مایل باشی میتونی زیر تخت دراز بکشی و شب وقتی به خواب میره یک پر از دم اون بکنی. در مورد سوالا هم من اونا رو میپرسم و تو به جوابا گوش کن. جک از اینکه با این شگرد کارش درست میشه خوشنود شد. رفت زیر تخت شیردال دراز کشید. هوا که تاریک شد، شیردال پیر وارد خونه شد. به محض ورود خونه پرسید: زن، بوی یه آدم به مشامم میخوره. زن جواب داد: بله امروز یه نفر اومده بود ولی بعد رفت. شیردال با شنیدن اون جواب دیگه چیزی نپرسید نیمه های شب شیردال به خواب عمیق فرو رفته بود و خورخور می کرد که جک از زیر تخت یکی از پرای دم اونو کند شیردال ناگهان از خواب پرید و فریاد زد زن دوباره بوی یه آدم به مشامم می خوره در زمد به نظرم اومد که کسی دوممو کشید زن در جواب گفت: حتما خواب دیدی چون به تو گفتم که امروز یکی از اونها به خونه ما اومده بود. بعدم رفت او چیزایی به من گفت درباره گم شدن کلید یه صندوقچه. شیردال گفت: کلید زیر یه کنده چوب در انباری پشت در ورودیه. بعدم گفت که در یه قصر دختری مریض شده و هیچکس نمیتونه درمانش کنه. شیردال گفت: زیر پلکان اون خونه وزقی لونه کرده و این لونه رو از موی دختر ساخته اگر اون موها رو برگردونن حال دختر خوب میشه زن ادامه داد در یه ای مردی هست که مجبور هر روز مردم رو روی شونه بذاره و از دریاچه عبور بده شیردال گفت اگه اون کسی رو وسط دریاچه رها کنه دیگه مجبورش نمیکنن به این کار ادامه بده. روز بعد شیردال صبح زود بیدار شد و از خونه بیرون رفت. جک که پر زیبایی در دست داشت و جواب شیردال رو درباره کلید گم شده و دختر بیمار و مرد بلند قامت شنیده بود از زیر تخت بیرون اومد. زن شیردال دوباره جوابها رو تکرار کرد تا مبادا جک فراموش کنه. جک راه برگشت رو در پیش گرفت و اول به مرد بلندقامت کنار دریاچه رسید. مرد پرسید شیردال چه جوابی بهش داده؟ جک گفت اول منو به اون طرف دریاچه ببر بعد جواب شیردال رو بشنو. مرد اونو به اون طرف دریاچه برد. وقتی جک به اون طرف دریاچه رسید، به مرد گفت که باید یه نفر رو وسط دریاچه رها کنه تا برای همیشه از این کار خلاص بشه. مرد بلندقامت که خیلی خوشحال شد، از جک هزاران بار تشکر کرد و گفت حاضره یک بار دیگه هم اونو به اون طرف دریاچه ببره. جک گفت از اینکه که تونسته راه حل مشکلش باشه خوشحاله. بعد هم خدافزی کرد و رفت. بعد از اون به قصری رسید که در اون دختر بیماری داشتن. جک به دختر علیل که نمیتونست راه بره کمک کرد و اونو به انبار زیر پلهکان برد. بعد هم لونه وزق رو برداشت و در دست دختر گذاشت. لحظه تون نکشید که دختر صحیح و سالم روی پای خودش ایستاد. پدر و مادر دختر از خوشحالی تو پوست خودشون نمیگنجیدن. اونها از فرط شادی هرچی طلا و نقره داشتن به جک دادن. جک به راهش ادامه داد تا به قصر بعدی رسید. در اونجا به طرف انباری پشت در رفت. از زیر کنده کلید رو پیدا کرد و به صاحب قصر داد. صاحب صندوقچه رو خوشحال باز کرد و مقداری از تلا و جواهراتش رو به جک داد. علاوه بر اون چندین گله گاو و گوسفند و بز هم بهش بخشید. وقتی جک با اون همه تلاو و جواهر و گاو و گوسفند و بز به دربار رسید، پادشاه پرسید اونا را از کجا به دست آورده. جک جواب داد، شیردال پیر هر کس رو که نزدش بره بی نیاز می کنه. فاصله به فکر پادشاه رسید که خودش نزده شیردال پیر بره. او وسایل سفرش رو آماده کرد و راه افتاد دست برقضا بعد از جک اون اولین کسی بود که به دریاچه می رسید مرد بلند قامت هم اونو به وسط دریاچه برد و اونجا رهاش کرد و پادشاه غرق شد به این ترتیب جک با دختر پادشاه ازدواج کرد و به پادشاهی رسید